دنیا چو فناست من بهجز فن نکنم جز یاد نشات و می روشن نکنم گویند مرا که ای زدد توبه او خود ندهد ور بدهد من نکنم در پای عجل چو من سرفکنده شوم در دست عجل چو مرقه پرکنده شوم زینهار گلم به جز سراحی مکنید باشد که به بوی می دمی زنده شوم که من کار جهان می میبینم اولم همه راویگان بران آن می‌بینم الله به هرچه چه در مینگرم، ناکامی خیش اندر میبینم. صبح سپس دمی بر مه گل رنگ زنیم بن شیشه ناموننگ بر سنگ زنیم دست از عمل دراز خود باز کشیم در زلف دراز و دامن چنگ زنیم